سلام، امروز میخوام در مورد وسیله صحبت کنم که خیلی از ماها از اون استفاده میکنیم و شاید متوجه نباشیم که چقدر در زمان برای ما جویی میکنه و چقدر کار رو برای بانک و کارکنان بانک ها ساده کرده شاید متوجه شده باشید که میخوام در مورد خودپرداز باشم و صحبت بکنم خودپرداز یا ATM یا آبر بانک یه دستگاه الکترونیکیه که ما کارت رو داخلش قرار میدیم یک رمزی رو وارد میکنیم و بعضی از خدماتی که در بانک ارائه میشه رو میتونیم از اون ماشین انتظار داشته باشیم که برای ما انجام بده برای مثال اگر بخوایم پول نقد یا پول کاغذی بگیریم چون میدونی که در ایران خودپردازها فقط پول کاغذی به شما تحویل میدن. اما در بسیاری از کشورهای دنیا خودپردازا سکه هم تحویل مشتریان میدن. به حدود 25 سال پیش اگر برگردیم خیلی محدود و فقط در تهران شما می میتونستید خودپردازها رو ببینید ولی امروز تقریبا در همه جای ایران میشه خودپردازها رو دید. یک آماری مربوط به شهریور 1401 هست که بانک مرکزی ایران منتشر کرده حدود 61 هزار دستگاه خودپرداز فعال در اون تاریخ در ایران وجود داشت ممکنه که این آمار الان خیلی بیشتر شده باشه شما میتونید علاوه بر دریافت وجه انتقال وجه به کارت های دیگه و در بعضی از موارد به حساب های دیگه انجام بدید شما میتونید گردش حساب خودتون رو ببینید موجودی خودتون رو ببینید قسط پرداخت بکنید و خیلی چیزهای دیگه اما اولین دستگاه خودپردازی که در دنیا نصب شد راهندازی شد و به کار گرفته شد در 27 جوانه 1967 بانک بارکلیز در انگلستان در محله انفیلت تاون در شمال لندن یک دستگاه خودپرداز رو نسب کرد که مردم میتونستن استفاده بکنن جان شپرد بارون مخترع این دستگاه بود و جالبه بدونید که اون زمان فقط حد اکثر میتونستن تا ده پوند از خودپرداز برداشت بکنن جالبه که این شعبه بانکی که برای اولین بار این پرداز رو در اون نسب کردن هنوزم کار میکنه و در 27 ژوئن 2017 یعنی پنجاه همین سال قرارگیری خودپرداز در اون یکی از دستگاهاشو به رنگ طلایی در آورد که یادی باشه از پنجه همین سال کار خودپرداز در اون بانک اما جالب هست که بدونید که هر کدوم از خودپرداز ها از چه قسمت هایی تشکیل شدن خودپرداز یک اسمت کارت خان دارن که بسیار شبیه کارتخانه سیار هست که اطلاعات مشتری رو میخونه یک صفحه کلیدی دارن که برای وارد کردن رمز مبلغ هایی که لازم داریم استفاده میشه یک چاپگر رسید دارن که رسیدی که لازم داریم رو برای ما چاپ میکنن اون من خود پرداز گزینه ای دارن که به شما میگن که شما رسید لازم دارید یا نه من همینجا جا میخواستم بگم و خواهش بکنم که اگر واقعا به اون رسید نیاز ندارید از گرفتن اون امتناب بکن نگرفتن همین کاغذ کوچکی که به شما داده میشه میتونه بسیار کمک بکنه در کم تر قط شدن درختان و به حفظ محتیزیست بسیار کمک میکنه قسمت بعدی اون قسمتی هست که اسکناس رو میشموره و به شما تحویل میده که بسیار شبیه دستگاه پول شماری هست که در بانک ها دیدیم یه قسمت است که اسکناس رو دریافت میکنه و باید قدپرداز کمی در ایران هست که بتونن این کار رو انجام بدن. یه قسمت بارکود خان داره که برای خوندن بعضی از بارکودهایی که لازمه استفاده میشه. یک دوربین دارن عموما خود پردازها که اگر لازم باشه تصویر رو ضبط کنند و یا عکس می‌گیرن از مشتری، یه پنل کاربری داره که ما عموماً اونو رو بینیم در سمت دیگر دستگاه خودپرداز هست و عموماً کاربر داخل بانک با اون کار میکنه در پایان میخواستم بگم که این دفعه که ما از خودپرداز استفاده می کنیم به مزایایی که این دستگاه برای ما تولید کرده و صرفه‌جویی که در وقت برای ما حاصل می کنه فکر بکنیم و ببینیم که اگر چنین دستگاه وجود نداشت چه مشکلاتی ممکن بود برای ما به وجود بیاد؟